به خدای یگانه مهربان سلام های ایرانی بخش عظیمی از گنجینه ادبیات شفاهی و آمیانی ما را تشکیل میده و قرن‌هاست که زندگی و آداب و رسوم جامعه ما ایرانی‌ها با هزاران افسانه و قصه درآمیخته شده افسانه‌ها به طور کلی در زندگی و ادبیات هر قوم و ملتی اهمیت و جایگاه خاصی دارند و حفظ و پاسداشت افسانه‌ها به عنوان بخشی از میراث معنوی هر سرزمین ضرورت داره و ما افسانی از مردمان سرزمین فارس رو براتون نقل کنم به نام پسر میشکار احمد برگرفته از کتاب قصه‌های مردم فارس به گردآوری ابوالقاسم فقیری در زمانهای قدیم مردی زندگی میکرد به نام می شکار رحمد که سرآمد تمام شکارچیان زمان خودش بود روزی از روزها خبر آوردند که در کوه حلب جانوری پیدا شده که هفت سر داره و از دهنش آتیش بیرون میاد این جانور میتونه با چنگالهاش هفت و شیر و پار کنه و اسمش هم اغلب هفت سره میه کار احمد افصانی ما که جویای نام و شهرت بود تصمیم گرفت که به کوه حلت بره و اون جونور عجیب و غریب و شکار کنه. میشکار احمد برای خداحافظی نزده همسرش رفت که باردار بود و بعد هم به راه افتاد. رفت و رفت و همون رفتنی که دیگه برگشتی در اون نبود. شهر غرق عذاب و ماتم شد. مردم شهر از غم از دست دادن میشکار شهرشون ازاداری ها کردند و عشق ها ریختند چند ماهی که گذشت زن میشکار احمد که باردار بود پسری زیبا به دنیا آورد که اسم اونو بیاد پدرش احمد گذشتن احمد کم کم بزرگ و بزرگتر شد و زن به همه سفارش کرده بود که هیچ وقت در مورد می شکار احمد چیزی به پسرش یعنی همون احمد نگرد. سالها گذشت. حالا دیگه احمد هجده سال شده بود. قوی هیکل و زیبا و خیلی زود تونست از همسالانش در همه ها مخصوصاً شکار جلو بیفته. با این حال احمد یک غم بزرگ داشت. و اون این بود که از پدرش هیچ اطلاعی نداشت از هر کسیم که درباره پدرش سوال میکرد کسی جواب درستی به اون نمیداد روزی از روزها احمد گزارش به زیر زمین خونش مفتاد تر اونجا بود که وسایل شکار پدرش رو دید و خیلی چیزا دستگیرش شد و مادر هم ناچار شد همه چیز رو برای پسرش تعریف کنه اینجا بود که احمد گفت مادر منم میخوام مصر پدرم میشکار بشم و میخوام راه اون در پیش بگیرم مادر با شنیدن این حرف به التماس افتاد و گفت پسرم بیا او از این کار بگذر من هنوز مرگ پدرت رو فراموش نکردم این کار آخر عاقبت خوبی نداره من فقط تو رو دارم احمد اما با همه این حرف ها احمد مصر بود که راه پدرش رو از پیش بگیره و میشه کار بشه احمد خیلی زود مهارت لازم رو از شکارچیان آموخت و لقب میهشكار گرفت و به نام پسر میشکار احمد شهرهٔ آم شد روز به روز هم توی کارش آگاهتر و خبرتر می میشد تا اینکه تصمیم گرفت به شکار اغلب یا همون جونور هفت سر بره بنابراین وسایل مرد نیاز رو برداشت از مادرش حلالیت تدوید و راه کوه حلب رو در پیش گرفت پرسون پرسون رفت و رفت و رفت تا به کوه حلب رسید در اونجا جنوری رو دید که بالای کوه قررش میکرد از صدای قررشش زمین و زمان میلرزید احمد چون بیاد پدرش افتاد در تصمیمش مصممتر شد جلوتر رفت و تیری در چله کمون گذاشت و به طرف جنور هفت سر رها کرد تیر درست تو سینه جانور نشست ولی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. جانور شروع کرد به نزدیک شدن به احمد افسانه ما این بار احمد شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و به طرف جانور حمله کرد و تونست سه سر از هفت سر جانور رو قطع کنه ولی هنوز از دهن جانور ها و یادیش بیرون میومد. اومد در این موقع احمد ای به خاطرش رسید تیری در چله یکمون گذاشت و چشم جونور رو نشونه گرفت. تیر درست به هدف خورد و جونور نقش زمین شد. خبر کشه شدن اغلب یا همون جونور هفت سر همه جا پیچید و از اون به بعد همه از پسر میشکار احمد و شجاعتی که در کشتن اغلب از خودش نشون داده بود صحبت می کردن. وقتی احمد به شهر خودش بازگشت، پادشاه با عدهای از درباریان به پیشوازش رفتن و احمد را با احترام بسیار وارد شهر کردند. بله. حالا دیگه محبوبیت احمد افسانه ما خیلی زیاد شده بود و همه جا صحبت از مهارت اون در شکارگری و شجاعتش بود. پادشاه خاطر پسر میشکا رحمت رو خیلی میخواست به اون محبت زیادی میکرد و همین مسئله باعث حسادت وزیر به اون شد وزیر فکر میکرد پسر میشکا رحمت به زودی جای اون رو میگیره بنابراین نزد پادشاه رفت و گفت قبله آلم همونطور که اطلاع دارید شاهزاده خاطر خواه دختر اسکندره الان فرصت مناسب و خوبیه که احمد رو برای خواستگاری دختر اسکندر بفرستیم. پادشاه با تعجب پرسید: احمد؟ اون رو برای خواستگاری بفرستیم؟ وزیر سریع تکوند و جواب داد: بله قربان. احمد تنها کسیه که میتونه آرزوی جلیله شاهزاده رو برآورده کنه. پادشاه گفت: نه، این کار غیر ممکنه. وزیف گفت قربان تنها راه رسیدن شاهزاده به دختر اسکندر همینه خلاصه اینقدر گفت و گفت تا بالاخره پادشاه پذیرفت که احمد به خواستگاری دختر اسکندر بره و این موضوع رو با احمد در میون گذاشت و احمد هم بدون تعمل پذیرفت حالا بشنوید از مادر احمد مادر احمد وقتی این موضوع رو شنید شروع کرد به گریه و زاری کردن و گفت چی <تصفح> گفتم دست از این کار بردار بر نداشتی هنوز هم دیر نشده از این کار صرف نظر کن من وزیر رو میشناسم پسر اون قصه سر بلیز کردن تو رو داره و خواستگاری دختر اسکندر برای شاهزاد فقط بهونه است بهونه پسر گفت قصه نخور مادر به خدا توکل کن من با دست پر برمیگردم میگردم مادر گفت گیرم که موفق بشی و با دست پر برگردی این وزیر دست بردار نیست بازم برات خواب تازهی میبینه خلاصه درد سرتون ندم پسر گفت و مادر هم گفت و بالاخره مادر حریف پسر نشد و احمد به همراه چند نفر راه ملک اسکندر رو در پیش گرفتند و رفتن و رفتن و رفتن و رفتن احمد بعد از سه روز رفتن به چوپانی رسید که به زیبایی تمام در حال نی برای گوسفندش بود به سر میشکار احمد این رو که دید گفت به به عجب نبوغ درانگیزی! عجب هنری داری چوپان و چوپان گفت هنر پسر میشکار احمد داره که توی کوه حلب اغلب هفت سر رو از پا در نه من بعد از احمد افثانه ما پرسید ای جوون رعنا تو کی هستی که نینوازی من به دلت نشسته احمد گفت من پسر میشکار احمدم چوپون با شنیدن این حرف جلوتر رفت و صورت احمد رو بوسید و گفت نیش شکار اسیز رخصت بده که منم در رکابت باشم اجازه میدی؟ احمد با خوشحالی گفت البته, البته البته قدمت رو چشم و به اتفاق راه افتاده روز هفتم به مردی رسیدن که وسیلهای در دست داشت و با اون به اطراف نگاه میکرد احمد به مرد نزدیک شد و پرسید چه میکنی برادر؟ این وسیله چیه ها؟ مرد گفت این وسیله خاصه که چیزهای پنهان و آشکار رو با اون میبینم مثلا میدونم الان اون طرف کو چی میگذره؟ احمد گفت عجب صنعتی میکنی برادر؟ مرد گفت سنعت و پسر میرشکار احمد کرد که تو کوی حلب جونور هفت سر رو از بین برد، نه من احمد گفت من پسر میشکار احمدم مرد با خوشحالی گفت ای پهربون، اجازه بده منم در رکابت باشم احمد گفت قدمت روی چشم و بدین ترتیب همگی راهی شدند روز یازدهم به جایی رسیدم. کجا؟ براتون میگی بله احمد و همراهانش به جای رسیدن که مردی خوابیده بود و اندازه یک کوه روش لحاف و جاجیم انداخته بودن و اون بازم می وای وای بای, بای، مردم از سر سردمه وای سردمه پسر سر میشکار احمد این رو که دید گفت عجب تحملی داری مرد مرد گفت من نه نه سردمه تحمل و پسر میشکار احمد داشت که با شجاعت تموم جنور هفت سر رو کشت آی چه خسرده سردمه احمد گفت من همون پسر میشکار احمدم مرد گفت آی آی خداهای بزرگ چه سعادتی اجازه اجازه میگیم در رکابت باشم احمد گفت البته قدمت روی چشم خلاصه این عده رفتند و رفتند و رفتند تا به ملک و سرزمین اسکندر رسیدن اونا توی کارون سرایی منزل گرفتن احمد به دربار اسکندر رفت و هدایایی رو که با خودش آورده بود پیشکش کرد و بعد هم موضوع خاستگاری از دختر اسکندر رو برای اون تعریف کرد اسکندر گفت من شرایطی دارم اگه تونستید این شرایط رو انجام بدین من دخترم رو به عقد شاهزاده سرزمین شما در می‌آورم. پسر میشکار احمد شرایط اسکندر رو قبول کرد و اسکندر دستور داد صد خروار عدس و لوبیا و نخود رو در هم مخلوط کردند و بعد به احمد گفت شما از الان تا غروب فرصت دارین که این عدس و لوبیا و نخود رو از هم جدا کنین. میشکار احمد فکر کرد و به سراغ رفیق چوپونش رفت و گفت ای چوپون نی نواز این گویو این میدون بنواز زیباترین و شادترین نوا رو برای به رقص و حرکت درآوردن این لوبیا و نخود و عدس بنواز میتونی چوبپون با جان گفت البته که میتونم و بعد نیرو درآورد و مشغول نواختن شد شادترین و زیباترین آوای خودش رو نواخت و با نوای اون عدس و لوبی و خود در حالی که به رقص در آمده بودن هر کدوم گوشه جمع شدن از اون طرف خبر رسید به اسکندر که بابا چه نشستی که اولین شرط رو خاستگارا بردن اسکندر از شنیدن این خبر به فکر فرو رفت و در صدت بر اومد تا شرط دشوارتری رو برای خاستگاران بحث کنه اسکندر این بار دستور داد حموم رو هفت شبان روز آتیش کردن. آب حموم اونقدر گرم شده بود که میتونه سلاشه گوسفندی رو دردم دم به گوشت پخته تبلیل کنه. اسکندر خواست که یکی از اونها به درون حمام بره. اینجا بود که پسر میشکار اون رفیقش رو صدا زد که با وجود یه عالم لحاف و جاجین که روش انداخته بود باز میگفت مردم از سرما و گفت خواب حالا نوبت توه نشون بده که چند مرد حلاچی مرد به میون آب هموم رفت و در حالی که فریاد میزد که به دادم برسید مردم از سر شروع کرد به لرزیدن. اطرافیان اسکندر با دیدن این صحنه رفتن نزدش و اون چیزی رو که در کمال ناباوری دیده بودن برای اون تشریح کردن اسکندر که دید این شرط رو هم خواستگارا بردن به فکر هیله افتاد چه حیله ای؟ الان براتون تعریف میکنم. بعد اسکندر این بار دستور داد احمد و همراهانش به دربار اون بیان اسکندر در واقع اونا رو به شام دعوت کرده بود شب شد و صفری مفصلی انداختن که توش انواع خوراکیها، ها و میوهها به چشم میخورد. احمد ما به این مهمونی مشکول شده بود درست درستت زدین بنابراین به دوستاش گفت دوستان حواستون جمع باشه من یقین دارم که کلکی در کار اسکندره اون دوستش که میتونست با یه وسیله چیزهای آشکار و پنهان رو ببینه گفت توی سفره دو جور خوراکی گذاشته شده خوراکی هایی که جلوی ماست همه زهر آلوده ولی خوراکی های اون طرف سفره همه سالمند چوپون گفت این که کاری نداره چاری کار در نواختن نی منه احمد گفت پس مادر چی هستی شروع کن الان همه سر میرسن چوپون شروع کرد به نواختن نی و در یک چشم زدن جای خوراکی ها عوض شد در این موقع اسکندر و یارانش وارد شدند. احمد به اسکندر گفت قرارمون این نبود. شما ناجوان مردی کردیم. با این همه مهمونی شما رو نادیده میگیریم. دخترتون رو به عقد شاهزادی ما در بیارید. اسکندر که مشتش باز شده بود و دید راه برگشتی نیست شرمنده گفت ببخشید دختر من آماده است. فردا میتونید عروستون رو با خودتون ببرید. فردا صبح عروس یعنی دختر اسکندر و همراه احمد و یارانش به راه افتاده در بین راه دوستان پسر میشه کار احمد یکی یکی حافظی کردن و از اون جدا شدند خبر به پادشاه رسید که پسر میشکار احمد با دست پر داره میاد وزیر جنس که در مجلس پادشاه حضور داشت با شنیدن این خبر به خشم آمد و با خودش گفت به محض رسیدن احمد به شهر باید نقشه دیگی بکشم و از دست این پسر مزاحم خلاص بشم هرچی از ما دورتر باشه برای ما بهتر و کم ضررتره. وزیر اونقدر به خشم اومده بود که متوجه نبود پادشاه داره حرفای اونو میشنوه پادشاه که متوجه حسادت وزیر و احمد شده بود گفت اتفاقا برعکس وزیر اون باید کنار ما بمونه. براش برنامه های زیادی دارم اون دیاغت هر مقام و منصبی رو داره حتی پادشاهی وزیر این که شنید در دم سکته کرد و از حسادت افتاد و مرد کاروان احمد به شهر رسید شاه دستور داد با ساز و نقاره به استقبار احمد برن همه یه شهر رو چراغونی کردن و در یه شب دوتا عروسی برگزار شد می دینید عروسی کی؟ بله عروسی شاهزاده و دختر اسکندر و عروسی احمد و دختر پادشاه هفت شبان روز به زنبکو بود و شادی و پایکوبی مدتی بعد هم پادشاه احمد رو به جانشینی خودش انتخاب کرد و همه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی رو ادامه داد یکی از روایتون نقش شده افسانه ای بود به نام پسر میر احمد از گنجینه های مردم فارس برگرفته از کتاب قصه های مردم فارس گردآوریه عبد فقیری چارلز دیکنز نویسنده معروف انگلیسی درباره افسانه دخترک شنل قرمزی میگه دخترک شنل قرمزی نخستین عشق من بود احساس میکردم اگه میتونستم با دخترک شنل قرمزی ازدواج کنم به کمار خوشبختی دست پیدا میکردم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صداوردار عطیه زاهوی کهی کننده زهرا عبدالله زاده افثانه دیگر بدرود